روز قشنگ زمستوریتون بخیر باشه این پگاه زیبا فرخونده باشه بر همه شما خدمتگذارتون هستیم مهمان عزیز و گرانسنگ و بزرگواری در برنامه داریم که معرف حضور بسیاری از احالی خراسان و همیهنان خوبمون و البته مشهری های عزیز هستند. دانشمند محترم حضرت آیت الله علامه سید حسن زیایی که استاد بر جستگ طب سنتی هستند، این خطیب آلغت رو دعوت کردیم اجابت کردیم توی این هوای برفیوز زمسونی خبر زحمت کردن تشکر بردن در خدمتشون هستیم بسیار بسیار خوش آمدید خدا شما بزرگوار و همه بزرگوار های دیگر شنمنده های عزیز بینندگان عزیز با با و امنیت بداره در خدمتون هستم من سکوت میکنم خودم هم خیلی مشتاق هستم که فرمشات شما رو بشنویم و بهره ببریم سلامت و بسم الله الرحمن الرحیم طب المعصومین که طب وحیانیه بر پا چهار پایه استواره یکی الحمیتو یعنی پرهیز صحیح دوم الوقایتو یعنی پیشگیری صحیح سوم العلاج یعنی درمان سعی چهارم از شفا و درمان بگونه ای که احتمال برگشت بیماری نیست انسانم که چهار جز داره جسم و روان روح و نور نورم دو نوعه یه بار حاله نوری انسانیه که با عکاسی های خاصی مثل عکاسی کاردیان در آکسفورد لندن، هاروارد و آمریکا عکس برداری میکن. هر انسانی به هر مقدار که اصول انسانی هم بیشتر رعایت کنه تو بحث روابط عمومی، این حاله نوری انسانی قطل و زخامتش اطراف بدن بیشتر. نوع دومش حاله نوری ایمانیه که در مؤمنین و مؤمنات هست. به خاطر اعتقاد به بلایت حق و عمل کرد و رفتارهای مثبتشون. در چارچوب اسلام ولایی، یعنی با برنامه ای که ولایت حقه براشون بیان میکنه اینا هم فازش قویه مؤمن ها یسعه نوره هم به این عیدیه این دومی و سومی روان با روح فرق میکنه روان ذهنیات روح یعنی روان پوش یا جسم سیار فرق جز اول انسان هم که جسمه بحث وزن و حجم و جرم و چگالی مواد و مانند این ها حالا تی این جسم باز روایات داریم هر جسمی که دارای روان و روح باشه جسد نام داره جسد هم به شما از کنم که از دو جز تشکیل شده یکی وجه و یکی هم بدن وجه یعنی پوست و صورت و همچنین, تراز و همچنین تراز شیب زاویه ای از حیث حجمی و هم مهندسی ساخت یعنی بحث تروماتولوژی مثلا تروماتولوژی فکر و صورت الان به تناسب زمستون که هست و ماشاءالله بارش رحمت الهیه است، تو بحث پوستمو و, و تو بحث صورت از حیث کیپ بینی یا گرفتگی سینوس های فوقانی یا گرفتگی صدا یا التهاب گلو یا آنژینه گلو یا تورم لوزهای جانبی اینا مبتلا به آن, آن اجتماعن تو بحث پوستمو در خلاف جهتمو شونه نکنن تو حمام شونه و برس نزنن مو شونه که بلند نگه میدارن تمیز نگه دارن شونه کنن فرق باز کنن همانند شما مجری مومن در منطقه طلب علامه حلی چاپ آستان قدس رزوی بنیاد پجوش ها چارده جلدی ها جلده میگه هر کسی که موشو بلند کنه ولی فرق باز نکنه خدا روز قیامت به منشار من النار و عرقی از آتش براش فرق باز میکنه. پس اسلام موافق تمیزی و زیبایی هست ولی مخالف با هرزگری دست پاچلوفتی و مانند این هاست. مو تمیز باشه، بلند باشه، فرق باز کنن، اشکال ندارد. حالا یه سری چیزایی مردم شریف باید رعایت کنن تا مو و پوستشون آسیب نبید. مثلا، اگر در حمامشونه کنن یا برست یا نخوناشون بلند باشه و حالت خنجین سرشون بشونن، ذریبه. افونت های باکتریایی و, باکتریای و قارچی پوست مو زیاد میشه ذریب ریزش مو زیاد میشه اگر این بارس و شانه نکتیز باشه در غیر حمام هم شونه کنن زریب مو خوره زیاد میشه مثلا اگر این یه تار مو باشه هر کدوم دو سه تار میشه بعد این درمان نکنه میاد پیاز مو رو عبه میبره باید از بالاتر از مو خوره پیچی کنه و نکای این موش روغن زیتون بزنه که این چند شدن خود شدن ادامه پیدا نکنه تا پیازمو و پیازمو رو از بین ببرن سشوار رو رو دور تون نگذارن مویه سرشون رو با سشوار خشک نکنن بلکه با حوله کنن بعد برای حالت دادن سه شوار به کار ببرم با فاصله پونزه سانتی متر از موهای سر از تایت الله از خواهی می کنم یک مصلاحی که جامعه ما الان مطلع بهش هست و البته اونطور که اخبار هم میگه جامعه جهانی فعلا مطلع بهش هست بحث سوی تغذیه است یا بدخوراتی هست بحرم. انتخاب قضاهای حالا غیر مغذی، غذاهای چرب، غذاهای حجیم و غذاهایی که باعث بله. خرابه شدن بدن میشه، افسایش بدن بله. میشه. من خواهش میکنم کنم بفرمایید از باب تغذیه سالم برای ما وقت بگذارید. کسانی که سوء تغذیه داشته باشن یا بدخوری کنند یا تفتالخوری کنند، یعنی فاست یا غذاهای صنعتی مثل سوسیس، کالباس، همبرگر امانند اینها اینا دوچار نارسایی دستگاه گوارش میشن حتی روی پوستموشون هم تأثیر منفی داره گاهی بعضی چیزها شکم پرکن هست اما آسیب رسانه. چرا؟ چون املاح لازم و مواد قضایی لازم برای پستمو فراهم نمیشه و یا نارسایه غیر عضوی معده میاره مثلا ازدیاده، گاز معده، قرقره های شکمی، پیچش شکمی، ترشا، پوده، تخمه، سرده، سرسوده معده یا هارتپون، یا ریفلاکس یا برگشت اسید معده این ها میشن. تو بحث همین مثلا رشد موی سر باید غذا یا ریزم و قضی باشه، نه محرک های شیمی مثلا فرض کنید که خورما با مغز بادوم شیرین، فواید متعدد داره از جمله رشد موی سر از جمله پیشگیری و درمان پوکی استخوان یا بیماری استرپرو تو بحث ما رشد موی سر داری مثلا پوسته برنج یعنی شلتوک برنج یا عرق شلتوک روزی یک قاشق چای خوری تا یک قاشق پلو خورید رو برنج سفیدش بریزه یا مثلا با ماکارونی بخوره یا عرقشو نصف استکان بخوره رشد مویه سر میاره حسن نگهداری از مو و رشد موه مثل روغن بادام تلخ روغن سیاهدونه خالص که سیاهدونه در روغن در پای روغن بادام تلخ بجوشه یا مثلا کندوش که از هندوستان میان بعد خودتون پودرش کنین و در روغن بادام تلخ بجوشه. به مدت 20 دقیقه. روغن بادام تلخ هم رشت ابرو میاره روزی یه بار بزن. هم به سر بدن رشت موی سر میاره. خب 20 دقیقه قبل حمام به خودشون میزنن. بعد همون تشریم برن. تا وقت بدنشون میشونن. آخر سر گردنشون میشونن. از اون قویتر روغن سیاهدانه خالص، از اون قوی تر روغن کنداشه. حتی محمد مؤمن حسینی از علمای بزرگ شیعه و نفوزی در دربار شاه تهماس به سفرین که الان قبر این مؤمن در خیابون خاکی آخوند خراسانی مشد وسط فلک دفنه به نام گنبت سر افرین احسن گنبت سر در کتاب توفی حکیم مؤمن اونجا همین تذکر رو میده بحث کندش اقلی هوای اقلیمی طبیعت کشورمون بین 80 سانتی تا 160 سانتی متر رشدمو داریم. آن آن که غالبا رشدموشون ضعیف شده یکی سوء تغذیه است. یکی عدم رعایت بهداشت فردی اجتماعی، اجتماعیه یکی رفتارشون با خودشون منفی مهربان نیست اصلا برنه، حواسشون نیست مثلا صابون‌های پر اسید زیاد می‌زنن، شامپوی پر اسید زیاد می‌زنن، شونه نکتیز برس نکتیز بعد نمیدونن که محرکای شیمیایی مخربه مقزی نیست ریز مقزی نیست حالا ریز مقزی در این قسمت فرابانه خیلی سپاس گذارش تشکر میکنم گفتگوی بود با علامه دانشمند حضرت آیت الله سید حسن زیایی استاد برجسته و ممتاز طب سنتی هنوز در بخش دیگری خدمت شما هستی سلامت. رخصتی میخوام مجالی که همکارانم هم یه بخش کوتاه رو تقدیم بینندگان خوبمون داشته باشند و ان در محضر شما خواهیم سلامت باشید روز خوش خیلی متشکرم ادامه گفتگو رو پیگیری میکنیم در خدمت استاد اندیشمند و دانشمند حضرت آیت حسن زیایی استاد برگسه و منتازه تب سنتی خب پرسش رو از این میخوام مطرح بکنم بعضی از افراد روی زبانشون بار میگیره ناوزیر هستن اونو به انهای مختلفی دفن. پاک بکنن در حین مسواق زدن یا به طراب دیگه من خواهش میکنم راهکاری رو هم پیرامون سموه که اسم ناشی بکنم یا کبد یا تغذیه باشه برخواد بزرگواره های جوان مواد نشاسته زیاد میخوام. مثل برنج، سیب زمینی، کوکو سیب زمینی بعد التهاباتشون شدید میشه. بخت میوه‌جات و سبزیجات کاهو بدون سس، اینا کم می‌خورن. بخت به التهابات میره بالا. گاهی بی‌اشتهایی التهابی میگن. گاهی فضای دهانشون مزه تلخی میده، مزه بد میده مثلا. یه بار دیگه بار زبان میگیره حالت کبره میبنده مایل به رنگ زرد یا پرونگ تر حالا اینها تو جیره قضاییشون سبزی خوردن بگذارن کاهو بدون سس بگذارن وسط نهار یا وسط شام یک پرتقال شیرین یا یک لیمو شیرین بخورن از نظر ظاهری دو چیز خیلی فایده داره یکی آب انار گس میخوش یا انار می خوش تو دهن بگردونن و بریزن بیرون خیلی فواهد آفت دهان در مزاجان از بین میره. و دیگر محلول آب سرکه طبیعی یعنی این یه استکان دو قاشق چای خوری و یه قاشق پلو خوری سرکه رو بریزن تیه یه استکان آب هم بزنن با این محلول تو دهن بگردونم قرغره کنم بریزن بیرون خیلی فوائد داره نقش لبنیات چیه؟ نقش لبنیات خوبه به شرط اینکه اگر پر تحرکه و بیماری زمینه ای مثل چربی خون مانند او نداره میتونه ماست و دوغش رو شیرین و پر چرب بخوره اما اگر اضافه وزن داره کم تحرکه یا بیماری های متابولیکی داره مثل خون مثل چربی خون یا آنزیمای کبدیش بالا رفته اینا ماست چرب، دوغ چرب، کشک قلیز اینا نباید بخواهند باید ماست یا دوغ شیرین چرب معمولاً دوچار استخون دردم میشن ناشی از درد مزاجی که افت میتابولیسم بازاله مختصری آویشن شیرازی یا نعنا رو قاطی این دوغ شیرین چرب بدون گاز ماست شیرین کم بدون گاز خوب میشه یکی دیگر از معضلاتی که حالا یه بخشی از جامعه مبتلا بهش هستن بره. بیماری سنگ هاست بره. سنگ های کلیه سنگ های صفرا بره. حالا یا سنگ های مثانه برای اینکه این که این سنگ ها هر چی زودتر تحلیل بره دفع بشه بره. چه مواد غذایی یک اصل کلی هست حاجیقا در رابطه با همه سنگ ها به اصل کلی اینه که شخص در 24 ساعت سنین بالای 25 سال در 24 ساعت 8 لیوان آب آشامیدنی سالم و آبجوش ولرم مصرف کنند 4 لیوان آب آشامیدنی سالم 4 لیوان آبجوش ولرم یعنی هر 6 ساعت دو لیوان یک لیوان آب آشامیدنی سالم یک لیوان آبجوش ولرم تخصصی اورولوژی یا کلیه شناسی اونجا میگن شخص هیچگاه دو چاره، سنگ کلیه و شن کلیه نمیشه یه قانون کلی اکثرا در زمان ما چون سن 25 سالگی به بعد حس تشنگی کم کم در انسان عبه میره و مشغله های فکری یا کار اجتماعی یادشون میره حاجق آب بخورن بله و خیال میکنن بقیه مایات جایگزینه بقیه مایات جایگزین آب آشامیدنی سالم میشه و حالی که اینطور نیست و در روایات شیه میفرماید بهترین نوشیدنی در دنیا و آخرت آب آشامیدنی سالمه آمد. سید و شراب فه دنیا و الاخره و الماؤه بعد از باب مستحب که کمک کنه به پیشگیری و درما آب جوشیده ولم یعنی اگر شرایط عادیه آب به نقطه جوش برسه پنگ دقیقه بجوشه، جوشه وشاله رو خاموش میکنیم ولم که شد یواش یواش بخوره قورت قورت نخوره که نارسایی عدم تعادل اسید معده یا همچین دردهای کبدی نگیره اگر قورت قورت بخوره بلکه بمیکه بمیکه بخوره مصن مصن لا عبن عبن امام صادق علیه السلام فرمودن حالا هر 6 ساعت که دو لیوان میخوره اگه عادت نداره میتونه یک نی بذاره تو لیوانش هر لیوان آب و آشامیلانی سالمشو پنج دقیقه در دقیقه طول بده در زمین که کار سعیش انجام میده یواش یواش که بخوره مثلا تو پزشکی جدید در بحث سنگ شکنی مغناطیسی یا لیزری است در کلیه یا مستانه و مانند تو پزشکی اسلامی و طب مکمل و سنتی حاجغا بیتونیم ما از سنگ شکنی های طبیعی استفاده کنیم یکی از سنگ شکنی های طبیعی مثل خوردن سیاه دونه. یه قاشق مرقب بخوری به جای گرت بده بعدش میاد با اصل به جای گرت بده خیلی فواعد داره حالا یکی سنگ های کلیه مساله رو خورد میکنیم دوم بحث هلدهنده های طبیعی مثل عرق خارخسک یا خارشتاری یا جوشونده و دم کرده اینها مثل کاکول زرد مثل دونگیلاس حتی معجونی از این ستا به صورت مایع که داروسازی حکیم تبریز میزنه تیزن مخلصه رقیقش باشه یه استکان مثل آب سفید قلیزش باشه زرد رنگ نصفه استکان تو با دیگه همین محطولهایی که از داروخونه میخرن قطره سنگ کلل باید به صورت نوسانی بخورن یعنی ماگزیمو مینیمومی روز اول سی قطره با یه لیوان آ روز دوم سی و پنج قطره همچه پنج قط پ قطه تا بیاد چه قطره باز دوباره 5 قطره قط قطره کم این هم کمک میکنه به شککندن سنگ کلیه و مانه و در مقیاس های کوچک قابل دفع. وقتی هلدهنده های طبیعی، مثل آب آشامیدنی سالم، آب جوش حتی تو خوراکی ها، تو میوه ها، از همه مدرتر، ادرار آورتر، به استله امروزی هم دیورتیک بالا، خربوزه رسیده شیرینه. حالا میتونه چند منظوره عمل کنه اگر مرد یا پسری که هم شنسنگ کلیه داره و هم تبرگم پرستاد، میتونه یه قاچ رو با پوسش به بخوره بعدش میاد به دازه تو بحانه همزن مخلوط داره این قوی تر از قرص‌های شیمیایی پرازوسین یا فیناسیترای یا قرصهای خارجی اومنیکمر کانادایی یا جدیدن قرصهای جاپنی ها زدن به نام اومنیک از اونا چیه؟ قوی تره. یعنی اگر مثلا یک پیرمردی باشه خب که پرونده داره فردا برای جرایه پروستات در زم هم داره به سه شب حاجام بعد از هر شام یک قاچ با پوسش به جور بخوره بعدش میاد تو مخلوط کن زن بزنه به سه شب پروستات باز میشه بدونه اینکه با دستگاه بخواد از پایین تنه لاپاراسکوپی کنه و با فرز قسمت داخلی پروستات رو بترش اینم هم قابله از تخصصین اولولوژی و فوق تخصص‌های نفرولوژی که بزرگوارای ما در مشهد دارین خدمت مهمان آلغت خواهیم بود باید بریم سراغ بخشی بعدی برنامه و همکارمون بله یه بخشی رو سرودی رو آمده کردن ببینیم و در خدمت شما خواهیم بود خدا کنه که نزول رحمت و برکت الهی کل برک زمستانی استمرار داشته باشه بازم گذاشای عباچه نسی بگه که روزهای آتی این برف بیاد هرچند که کندی و گرمورو رو داریم اما بالاخره ازوار این دهگان باغدارها، دامدارها ها، هم خوشحال بیشن ما هم خوشحالیم بالاخره اون های زیرزمینی یه جوری باید پر بشه از آب برای تابستن در خدمت استاد فرزانه حکیم سید حسن زیایی هستیم و ادامه گفتگوی که بیشون آلم و اشراف کامل دارن بر اون تبه سنتی که مورد نیاز و ضرورت جامعه هست و مورد علاقه خصوصا ایرانی ها و مشرق زمین خدمتون هستی مرمه کفتگورو سلامت باشید تو بحث سنگ شکنی طبیعی سنگ های موجود در کلیه و مسانه و صفره یکی از سنگ شکنی های طبیعی ها جبا سیاه دونه هست سیاه در روایات شیه امام صادق علیه السلام فرموده تا الفداء تا هزار بیماری ها میشه باهاش درمان کرد تو پزشکی جدید تحقیقات داخل و خارج کشور حتی اروپای قربی کانادا آمریکا تا کنون تونستن چارصد نوع بیماری رو باهاش درمان کنن حتی کتابای تخصصی در همین زمینه هست از خارجی مثل سلماز و ترجمه ایرانی بیش از دیویس صفحه سیاه دانه یا دانه شفا بخش حالا یکی از فوایدش سنگ شکنی طبیعی سنگ های کلیه و مسانه است و کمک به سنگ شکنی صفرا. یکی دیگه از چیزهای طبیعی ها هسته خورما. هسته خورما بین هفته که خورما نشجون میکنن حساش نگردم. یک روز در میون تو قوری های کچیک بیستی تا از این حساره بندازن سه استکان روش آب بریزن بیست دقیقه بجوشن ولی یک استکان از این جوشونده هستی خورما رو بخورم بقیه چه بریزن دور هر بار تازه جوش باشه سنگ های کلیه و مسانه رو خود میکنم تو بحثای دیگه های مثل تروپسیان یا جوهر تروپسیان یکی از حکیمای قدیمی بود خدا رحمتش کنه جای امامزاده صالح تهران فلکه تجریح جای بازار ایشون جوهر تروفستی که درست میکرد به سه ورده حاجه بیمار زنگ کلی هاش خورد میشد و دف میشد عجب. گاری هست حاجه میتونیم سنگ های سفره رو نرم کنیم حالت خمیری و سپس دف کنیم وقتی که قبضت سفره رو بیاری پایین با مصرف تمرهندی مخلوط در آب تره هندیا بسای نیم کیلویی میاد قرمز رنگ بسات یا سبز رنگه سبز رنگا شیرین قرمز رنگا یکم ترش بله شیش هفت از این خوشها رو میذاره تو لیوان روش آب میزه بعد که خسید حساش رو جدا میکنه همین لپه رو با آبا میخوره قرزت صفرا یا لجن صفراوی از بیمر بعد من خمیر کردم مثلا این زردچوبه که با روغن زیتون قاطی بشه صد مصرف بشه یک قاشق چایخوری تو 24 ساعت ساییده سفتو را حاجیقا نرم میکنه شبیه خمیر و بعد در میشه وحصل به ام که عرض کردم چرا بیماری ام اس بیماری ام اس تسلب متعدد شریان مغزه ده از یا تعبیر روماتیسم ستون فقرات هم میکنه علائم داره یکی از علائمش اینه که در 24 ساعت 48 ساعت تا 72 ساعت اول درگیر میشه چشمشون ها جا دوبینی میشه یعنی هر چشم هر شیعی یا دوتا میبینه نمیگیم دوبینی علامت دوم ایجاد لمسی و کرخی در قسمت های طرف راست یا طرف چپ بدنه که این پیشرفته که بشه ادامه پیدا میکنه دست میگیره پاش میگیره به گونه ای که پاهاشو نیمتونه ورداره بذاره پاهاشو یکیش میکشه با حاله لخ لخ میکنه لخ میکنن اینجا برای اکثر بیماری ها از جمله MSD چهار چیز سمه برایشون بده یکی قند های شیمیایی قند و اینجا ته قند دوم اوسانس های شیمیایی مثل نشابای گازدار، آب میوایی شیمیانی، سن ایچ، سمارتیز، نشمک، یخمک، بسانی کردیم، این چیز هفتا نو اصانستانیم بیستا بیماری نید سوم، ترانس چربی بالا مثل تعدیه، کیک خامهی، رولت، نارنجکی، کلپاچه، جگرسی ها، تو موز، روغن، جامد، انواع سوسا مثل ترانس چربیه بالا چهارم، کافئین زیاد چای پرنگ، چای مونده، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه خب این چهارتایی که بده هست میکنه چون این قنده شیمیایی ها کروم بدن رو کم میکنه کروم قضا دکتر حسین میرحیدر در کتاب معارف گیاهی این مطلب علمی که کروم رو کم میکنه اوورده 8 جلد جلد دوبا پس این چهارتایی که براشون بده ترک میکنن بیماران MSC باید تو محیط آرام باشن و افراد خوبی بگن ایجاد استرس یعنی نگرانی مستمع استراب یعنی دلهوره دلشوره دلواپسی و درگیری های ذهنی و آشفتگی های روانی بسیار برای سمه پس باید تو محیطی باشن که آرام داروهاشان تقویت سیستم اعصاب مرکزی که بین مخچه و بسان نخواهد و تقویات سیستم احصاب حرکتی که مثلا تو بازوهای دست و پاشه. حالا اینجا صبحها یک لیوان شیر اصل شیر تازه گاو کمچر یا اصل با آب جوش ولرم یا اصل با آب ولی اصل هاشونو اصل های گرم بگذرن مثل اصل آبیشن مثل اصل نعنا اگر رفته ام ار آی گرفته و این متخصص مغز و یا تخصص احساب روان میگه تجمع مایات اضافی بافتی مثلا دو طرف پرده منش مثلا زیاد شده اینجا اصل گرمش باید اصل استخدوست باشه که مایات اضافی رو خوش کنه که فشار اضافی نید و اعصاب حرکتیشان این خدا اینا نکرده یکی تصادف کرده مثلا یا سکته ناقص مغزی به نوع لخته خون کرده فشار اضافی که روی مخچه میاد یا پلاک هایی که تشکیل میشه فلج اندامی پیش میاره ما باید این فشار اضافی ورداریم پس شخص MSD اینجا شیر اصل شیر کمچر یا آبجوش اصل که آبجوش بلغم باشه داغ نباشه که خاصیت اصل کم باشه یا آب و آشان سالم. این مال س وسط روز یا اصرونش یک استقان تا یک لیوان آب به آب به این با همین گرم هم میزنه میخوره خیلی فواید داره یکی هم همین بحث امست شبا بعد از شامش تا وقت خوابش یک لیوان آب سیب تازه با گرم هم بزنه بخوره فواید زیاد داره یکیش اینه که کمک میکنه به درمان کمخونی فقر آهنش کمک میکنه به آناتومی حرکت سعیه بدن که تو بحث تخصیصی ورزش مطرح می کنه حرکت های اندامی از حیث اسکلتی از حیث ازولانی از حیث تاندونا، از حیث مینیکس ها از حیث ریگلاژ بودن. این استخونا و دیسکا و کشکت زانو و مانند و قضروف روی مفاسق حالا مباحثه اینه که پزشکی جدید داروی واقعی در درمان ام نداره. انواعی از داروهای کورتون رو تجویز میکنه که خود مصرف مدابم کورتون در طول زمان پونزده بیماری میاره ده. ده. خیلی متشکرم از تشریف فرمایی شما من میخوام از حضرت آلی قول بگیرم که انشالله به طور دوره ای و مستمر در انشالله. برنامه صوبزاهی ما پنشنبه ها انشالله. انشالله تشریف بیارید ما و بینندگانمون در محضر شما فیض ببرید سلامت باشم. استاد حکیم فرزانه سید حسن زیایی استاد ممتاز و برجسته تب سنتی خدمتشون بودیم بایشون با خداحفظی می می‌کنیم.